اما ملت باید دار باشد بداند بداند چه اتفاق چه اتفاق دارد دارد یک مسئله این است که دشمنی آمریکا با ملت ایران و با جمهوری اسلامی حول محور هسته‌ای نیست اصلاً. این خطا اگر خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما سر قضیه هسته‌ای است. نه قضیه هستهی باهانه است. است قبل از اینکه مسئله هستهی مطرح باشد همین دشمنی ها همین مخالفت ها از اول انقلاب بود اگر یه روزی مسئله هستهی هم حل شد خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد نه ده تا باهانه دیگه رو به تدریج پیش میکشن چرا شما موشک دارید؟ چرا شما هوابمای بدون سرنشین دارید؟ چرا شما با رژیم صهیونیستی بدی چرا شما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمی چرا شما از مقاومت در منطقه به قول خودشون میانه حمایت می‌کنین و چرا و چرا و چرا بجرا بجرا بجرا بجرا بجرا مسئله این نیستش که اینها سر قضیه هسته‌ای اختلاف با جمهوری اسلامی پیدا کرده باشن نه تحریم آمریکا از اول انقلاب شروع شد روز به روزم بیشتر شده است تا امروز به نقطه بالایی رسیده هواپیمای جمهوری اسلامی رو سردگون کردن دویست و نوت مسافر رو کشتن اینها ها در کشور را انداختن علیه انقلاب کودتا کردند از زد انقلاب ها در هر نقطه ای از کشور که بود حمایت کردند این نیست که ما خیال کنیم دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به خاطر مسئله هسته ای نه مسئله مسئله, مسئله دیگری دیگر است ملت ایران به خواسته های آمریکا نگفت ملت ایران گفت آمریکا علیه ما هیچ غلطی نمیتوانه بکنه امریکا هیچ غلطی نمیتوانه و جوان ها مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی نگه امریکا میتواند می دخالت نظامی داریم امریکا بکنه اینها با موجودیت جمهوری اسلامی مخالفن با نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی مخالفن ایرانی که امروز از اعتبار برخوردار از احترام برخوردار از اقتدار برخوردار است با این دشمنان با این مخالفن اون روز اینها راضی میشن که ایران یک ملت ضعیف کنار مونده منزوی بی اعتبار و بی احترام باشه مسله هست هستی که نیست مسله مسله هست که نیست؟